خب بسم الله الرحمن الرحيم درس ده كتاب اسمه و وأخواتها ما هي كان كانت جهس هل توجد أفعال تعمل عمل كان أي أفعال وجود دارن كهمن عمل كان روجن جنبند كم قسما الأفعال ناقصته؟ افعال ناقصه بر چند قسم هستند؟ شست ماهی مرتبه تو الاسم و الخبر رتبه اسم و خبر چه هست در بحث کانه؟ ماذا یجب ان یکون الفعل اذا اخبر بهی عن الافعال ناقصه؟ چی چیزی واجب است که فعل باشد؟ زمانی که به وسیله فعل خبر داده شده از افعال ناقصه یعنی زمانی که فعلی خبر افعال ناقص فیل بود. واجبه که چه باشه؟ به ایشه این تمتاز و کانه عن سائر اخواتی؟ کانه با چی ویژگی از بقیه اخواتش متمایزه جدایه؟ 69 به ایشه این تختص و لیسه مختص به چیزیه؟ اینا سوالاتی بود که پاسخ شونده. شاسوس كان فعل يدخل على المبتدأ والخبر فيرفع المبتدأ ويسمى اسمه وينسب الخبر ويسمى خبره نحو كان البرد قارسا ميغي كان فعلي هست داخل مشي بر مبتدأ وخبر بر چه؟ مبتدأ وخبر مبتدارو مرفومي کنه و اسمش نامیده میشه دیگه اون موقع بهش مبتدا نمیگند و خبر رو منصوب میکنه و خبر کانه نامیده میشه دیگه خبر مبتدا نامیده دیگه ببین ما در مبتدا خبر میگیم مبتدا و خبر ولی اینجا نه اینجا میگیم اسم کانه و خبر کانه یا خبر اخواتش فرقی نمیکنه مانند کان بردو قاریسن و ینسب الخبر و یعنی خبر میگه خبر رو منصوب میکنه و خبرش نامیده میشه ماننده کان البردو قارسه کانه میگیم فیله ناقصه البردو اسمش مرفوع علامت رفزمه قارسن خبر کانه منصوب علامت نسب فتحه میگه سردی شدید بود سردی چی بود؟ چه سوچاری وجده اثنا عشر فیلا تعمل عمل کانه میگه دوازده فعل وجود داره که همین عمل کانه رو انجام میدن یعنی اسم رو میکنن و خبر رو منصوف و هیه و از این دوازده باتا امسا ذله، باته، امسه، مازاله، من مابریحه، منفکه، مافتیه، مادامه، صارا و لیسه این دوازده تا عمل رو انجام میدن مانند اصبح زیدون قائما أضحى ألي جالسا ليس بكر عالم ليس رو ويقال لها الأفعال الناقصة بينا فيل هاي الناقصة قفتمش بينا شي قفتمش أفعال الناقصة خوب فوائد يلحق بهذه الأفعال كل فيل لا يستغنى از خبر. میگه ملحق به همین افعال میشه، ملحق به همین افعال میشه یعنی به افعال ناقصه هر فعل دیگه که بی نیاز از خبر نیست، هر فعل دیگه که نیاز به خبر داره ملحق به اینا میشه. مثلو مانند آباه، رجعه، استحاله، عاده، حاره، ارتد تحول. غدا راحا انقلبا وتبدله وكلها بمعنى صاره تماماً اين فعلات كي يومدون ما يعني كي بودن؟ گردد گشت گرددن عادة بل نا اينجا بمعنى گرددن هست مانند عاد زید رجلن زید مردی گردید آ؟ یا عاده زید عالما زید چی گردید عالم گردید بله به گردیدن سارین البته در فعل میشه گشت خوب دو معنا کانه اتصاف ال... حالا داره معنی شنو میگه میگه معنا کانه اتصاف المخبر عنه بالخبر فی الماضی معنی کانه چه هست؟ متصف بودن مخبر عنه به خبر در ماضی در وزشته این یعنی موقع که ما میگیم کانل البرد و قارسن مخبر عنه ما برده خبر قارسنه میگه ما مخبرانهو متصف میکنیم به خبر ولی در گذشته یعنی ما برد و متصف به قارس بودن میکنیم ولی در چه؟ در گذشته مانند کان الجو و باردن. هوا سرد بود مخبرانه ما جبه ما متصف به سرد بودنش میکنیم وصف به سرد بودنش میکنیم ولی در که؟ در گذشته پس این معنی کانه بود و معنا اصبحا اضحا ذلا باتا و امسه معنی این پنجتا اصبحا اضحا ذلا باتا، و امسه چون اینا وقتو بیان میکنن. هر یکی از اینا گوشی از وقتو در درش روز مثلا اصبحا وقت صبح اضحا وقت چاشت ذلا یا باته اینا شب امسا باز هم بعد از ظهر یاون ابتدای شب میگه معنای اینا چیه اتصاف او بالخبر فی الصبح و والنهار والليل والمسا میگه موقعی که ما یکی از این یز اینا رو به بردیم ما مخبرا متصف میکنیم به خبر در وقت صبح در وقت چاشت یا در وقت روز یا در وقت شب یا در وقت شب ظله به معنی نهاره ظله به معنی چه؟ پس, پس اینا رو معنیشون گفت موقعی که ما میگیم اسباح زیدون قائمن ما مخبران که زیده متصفش میکنیم اسباح زیدون قائمن به ایستادن در وقت صبح در وقت چه؟ زید و متفاوت به ایسادن میکنیم به خبر میکنیم در وقت صبح اگر آب‌ها در وقت نه‌ها ظلّا در وقت روز باته در وقت شب امسا در وقت مساف بله و معنا لیسا نفیو لیسا خوب معنی نفیم واند لیسا زید علمان زید عالم نیست و معنا صاره التحول و الانتقال صاره به معنی به تبدیل شدن به معنی انتقال یافتن موقعی که ما میگیم صار غلّه صار وجهه مسودان یعنی چهرهش سیاه گشت و معنا مازال ما برح ما فت او من فک اما اینا معناشون کی میشه مازال و ما وما برح و ما فت او من فک اینا ملازمت الخبر للمخبر عنه معنیش اینه که خبر همیشه برای مخبر عنه است موقع میگم مازال زید قائمن یعنی همواره زید چی است ایستاده است خبرو همیشگی هست همواری هست ملازمت داره برای مخبر عنه وما انا ما دام استمرار الخبر اما ما دام بمعنى استمرار الخبر بمعنى على ان على ان كان على ان على ان كان اصبح امسى اضحى ظل وبات ميجي متوجه باش كان اصبح امسا اضحا ذلا و باتا کلمه قد توستا عمل و ایبان به معنی ساره به معنی ساره هم کاربورد دارن اینا به معنی ساره به معنی گردیدن هم باره معنی ده ذلا وجهوهو مصوددن در قرآن اومده که اینجا ذل به معنی نهار دیگه نیست اینجا به معنی گردیدنه یعنی چهره اش سیاه گشت چهره اش سه تات الأفعال الناقصه تامه ميجي افعال ناقصه تامه مياند و زماني تامه باشا يعني فاعل دارندي خبر ندارند ميجي افعال ناقصه تامه هم مياند ما حدا جزء ليس و ما فتئ ليس او او ما الذي هست ما زاله لایزالو. اینا میگه به شکل تام نمیاد. فتکونو خوب میگه فتکونو کانت تامه اذا جعلت بمعنى حدث و حصله. میگه کانت به معنی تامه هست. زمانی که به معنی حدثه و حصله قرار داده بشه به معنی چه چی چیزی قرار داده بشه؟ بله و ظلا به معنی استمرى زل زمانی که تام باشه به معنی چی میشه؟ استمرى و بعث باطن به معنی نزله لیلان مانند با تا زیدون یعنی در شب اومد و امسا به معنی دخلا فلمسا امسا هم به معنی تامم میاد یعنی اون موقع خبر نداره مانند امسا زیدون زید بیگاه کرد به وقت مسا داخل شد امسا زیدون اما اگر بگیم امس زیدون قائما معنیش این میشه که زید در وقت بیگاه چی ایستاده بود اونجا دیگه ناقص هست چون اسم خبر داره چون اسمو بله اضحى هم زمانی که تام باشه به معنا دخلف الضحى یعنی در وقت چاشت وارد شد سارا به معنی انتقاله انفك بمعنى انفصلا جدا شدند وبرحا بمعنى ذهب برحا بمعنى ذهب برحا زيدون زید زي رفت دیگه خبر نداره دامهم به معنی بقيه دام به معنی چی وحينئذن ببین میگه تام باشه معنی چی وحينئذن تأخذ فاعلا وتكتفي به میگه در این صورت یعنی زمانی که تامه باشه فائل میگیرد و به فائل اکتفا میکنه به فائل چیکار میکنه؟ دیگه خبر نداره نحو ماننده فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون مثال شو همه آورده همانا خداوند به اون میگه باش فَيَكُون پس میشود کن باش فَيَكُون, فيكون پس میشود به حاصل شو پس حاصل می شود به وجود بیا پس چه به وجود می آید و سبحان الله حین تمسون و حین تصبحون تمسون و تصبحون هم اینجا تامه هستن چون فاعل دارند این واوی که درشون هست واوی زمیر دیگه ولی خبر ندارند منزه هست الله زمانی که صبح می کنید یعنی زمانی که وقت مسا وارد می و زمانی که وقت صبح وارد می شوید. خالدین فی ما دامت السماوات و الارض. همواره در آن هستند تا که وجود داشته باشد آسمان ها و زمین شست و الافعال ناقصه تو ثلاثتو اقسامه. افعال ناقصه بر سه قسمت. پرسیده بود که افعال ناقصه بر چند قسم هستند جواب میده که افعال ناقصه به سه قسم تقسم میشند الأول نوع اول يتصرف تصرفا تاما نوع اول هوني که تصرف تام میشن بله یعنی هم ماضی داره هم مضارع داره و هم امر مالند کانه امسا و اولایک تصرف کامل میشن اینا هستن کانه امسا اصبحا اضحى و و لا يتصرف اصلا نوع دفموني اصلا صرف ما معنى ليسه ما دامه وهو هو و اصلا صرف نميشن ليسه ما دامه اصلا ليسه نمزاره داره و نه عمر و يتصرف تصرف ناقصا نوع سوفموني اصلا تصرف ناقص مشه تصرف چه مشه وهو و اونا ما زاله كه مزارع داره ما فتعه ما بريحه و من فكه خودش كفته اين ناقص بودن شلمانيش چه فإنه لا يشتق منها غير مضارع فقط فقدنا مزارع دارند اين مشتق نمیشه از انا فقط مزارع بال من فكه مزارع مشه يعني ببینید این ما كه جدا هست این فكه ينفكوا هم مضارع انفك ينفك لا ينفك برحا يا برحوا فتئ ما زال لا يزالوا فوائد كل ما اشتق من هذه الأفعال يعمل عمل ماضيها في رفع الاسم ونصب الخبر تبشيري وتوزيمدي ميگه هر فعليك هر كلميك از این افعال مشتق بشه عمل ماضی رو انجام میدند در مرفو کردن اسم و منصوب کردن خبر ببین مثلا کان چه عملی رو انجام میداد هر کلمه که از این کان مشتق بشه همین عمل کان رو انجام میده کان زیدون آل من یکون و زیدون من دادش شدی؟ مسترش هم چونین الى آخر خب ولی مصدرش به اسمش مضاف میشه مصدر قبلا ما خوندیم اشارتا غیر ان مصدرها یضافه الی اسمها فیكون الاسم مجرورا لفظا مرفوعا محلل گفته بود که هر کلمه که از کانا مشتق بشه هر کلمه از مشتقات کانا باشه یا از مشتقات کان باشه عمل کان رو انجام میده ولی با این فرق که مصدرش مضاف به اسم خودش میشه و لفظا اسمش مجروره ولی محلن مرفوه مانند عجبت من کانی اخی که تعجب کردم از بودن برادرت متقلب خب اینجا کانی اخی که بودن برادرت اینجا کان مصدر کانه هست اخی اسمشه میبینیم که مجرور هست لفظه چرا مجروره؟ چون کان مضافه به اخی هست پس میگیم اخی اسم کانه اسم کان مجرور علامت جرش یا متقلبا هم خبرش دو این ها دهه الافعال تعملو بلا شرط ما عدا زاله و بریحه و فتحه و میگه این افعالی که نام بردیم این افعالی که نام بردیم بدون شرط انال انجام میداد بدون شرط جز زاله و بریحه و فتحه و جز این چارتا جز اينا چه شرطي داران فلا تعملوا عمل الافعال الناقصة الا اذا تقدمها النفي او نهي او استفهام انكاري او دعاء ميگه انها عمل افعال ناقصورا انجام نمیدند مگر زماني قبل زنا یا نافي بياد یا نه بياد یا استفهام انكاري بياد یا دعاء بياد در این حالت انا عمل انجام میدند ولا يكون الدعاء الا بلا و دعا هم با لائه دعا هم با چیه؟ با لائه معنید دی ما زال, زال همواره انسان ضعیف است خب اینجا می بینیم که زالا قبلش چی اومده؟ مح لا تزل صابران اینجا نحیه لا نحو روش اومده همواره صابر باش لا زلت اینجا هم دعاه همیشه خوشبخت باش همیشه دعا هم بالا گفته بود که دعا فقط با چه باشه بالا استفاب هم ماننده البته استفاب استنکاری هم هل یبره البخیل و منقوتن واما النفي فَلَا يَكُونُ فلا مُعَيَّنَةٍ بَلْ يَكُونُ إِمَّا يكون كَمَا بالحرف الْمِثَالِ في المثال قلت بود كي قبل از اين نفي بياد ها قبل از اين در مورد باشه حالا در مورد النافي. میگه نفی آ فقط با ما باشه یا با لا یا نه با چیزای دیگه هم میشه نفیش کرد میگه نه و اما نفی النفی فلا يكون بأداة مؤجلة بل يكون اما بالحرف كما فی المثال میگه نفی با اداه مشخصی نمیشه بلکه گاهی موقع با حرف اما اون طور که مثالای که خوندیم با ما و لا بود که اینا حرفن او به فعل یا با فل هست نفی مانند ليس ينفك الداء مقیما دعا همیشه مقیم نیست دائمی نیست خب اینجا هم که میبینیم یعن فکر با چی منفی شده با لیسه که فیله و کلو ذلك من قبیل نفی لفظا میگه تمام اینا از نوع نفی لفظی هستند و اما نفی معنی اما نفی معنیی که قولک ماننده قلما یزالو زیدون مصافرن قلما ها این معنن نفیه هست معنن چه هست خب شاید سوشیش این الاسم فی هاد الباب خب میگه اسم در این باب اسم یعنی در باب کانه و اخواتش يجري مع الفعل الناقص مجرى الفائيلي في التزام التأخيري وإفراد العاملي ميجي اسم درين باب كان وأخواته حمراه بافعال ناقص يعني اگر أجل... چن گفته بود این فعلا جستنتاي كنامورد باقي ميتوان ناقص هم باشه وميتونن تام هم باشه ميجي اسم درين باب همراه با فعل ناقص مثل فائل جا... مثل فائل است احکامش مثل چه هستن؟ در لازمی بودن تأخیر و در مفرد بودن عامل در مفرد بودن چی؟ بله و هلوم مجرن و اینطوری قیاس بگیر و یجري مع الخبر مجر المبتدعی مع خبره في التعريف والتنكير والتقديم والتأخير ببین الهازه اسمش گفته بود که به مانند فاعل مفرد مثل چیه مثل فاعل که بحث فاعله خوندی اسم حمرا هبا خبر بحث به مانند مبتدا با مبتدا با خبرش چه احکاماتی داشت اینجا هم اسم کانه با خبرشمون احکاماتو داره اسم کانه با خبرش در در رابطه با مبتدا با خبر چه احکاماتی داشت این بود که در بحث در نه در اون را از جهت معرفه و نکره بودن از جهت مقدم و مؤخر بودن چه احکاماتی ما خوندیم همون احکاماتو اینجا هم اسم کانه با خبرش داره تون در واقع ببین در واقع مکان رو که برداریم این همون مبتدا و خبره که روی مبتدا و خبر اومده این فعل ناقصه فوائد ان المراد بالخبر هنا الخبر المفرد منظور از خبر خبر چی بود مفرد بود و اما الخبر الواقع جمله نحو کان الامیر یزورنا او یزورنا رسوله فیجوز تقدیمه ببین این مسائلی که اونجا گفت منظورش خبر مفرد بود خبر چی بود؟ مفرد بود اما خبری که جمله باشه خبری که چی باشه؟ جمله باشه مقدم کردنش جائز هست مقدم کردنش چیه؟ یعنی میشه خبرو قبل از کانه آورد مش قبل از کانه قبل از اسمش آوردش شد مانند کان الامیر یزورنا او یزورنا رسوله متوجه شدی اینجا خبر ما جمله است کانه فعل ناقصه الامیر اسمش اما یزوروا فعل فعل دیگه فعل یعنی از نوع جمله شد خبر از نوع چی شد؟ آره فعل که باشه فعل فاعل داره دیگه فعل به تنهایی که خبر قرار باره نه هم که مفعوله فاعلش هم مستطره خب میگه فیجوز و تقدیمه مقدم کردن خبر جمله جائز است یعنی تو میتونی قبل از کانش؟ بیاری خبرشو ماننده یزورنا کان الامیرو متوجه شدی؟ یزورنا قبل از کان اومده یا میتونیم فقط قبل از اسمش بیاریم مانند کان یزورنا الامیرو کان یزورنا الامیرو که اسمشه بعد از خبرش اومده و کان یزورنا رسوله الامیرو کان یزورنا رسوله ال که بینیم اینجا یزورنا رسوله خبر ما قبل از امیر اومده پس اگر خبر مفرد می بود همون احکامات مبتدا و خبر رو داشت اما اگر جمله باشه جایز مقدم کردنش جایزه غیر ان المختار منعه لما فیه من التشویش میگه ولی ولی قول مختار اینه که ممنوع باشه این چیز یعنی قبلش نیاریمش مطلید شدی؟ میگه مختار اینه که ممنوع باشه یعنی این آورده نشه قبلش دو اما تقدیم الخبری على دامه ولیس فمنعه جمهور نحاتی ببینید؟ اون در مورد کانا و بقیه بود میگه اما مقدم کردن خبر چون اونجا در اون مثالا آورده بود که خبر رو حتی قبل از خود کانا آورده بود ولی میگه در بحث داما و لیسه در بحث چی؟ میگه اما تقدیم الخبری على داما و لیسه فمنعه جمهور نحات اما مقدم کردن خبر بر داما و بر لیسه جمهور نحوی ها اینو ممنوع کردند یعنی جمهور نحوی ها گفتن نمیشه خبر و قبل از دامه آورد خبر و قبل از لیسا آورد قبل از خودشون نمیشه آوردش لیکن هم اجازو توسطه بینهما و بین تماس تمسکن به قول شایر اما وسط قرار دادن یعنی وسط قرار دادن بین لیسا و بین اسم لیسا اینو جائز دونستن بین لیسا و بین چی؟ قبل از خود لیساش جائز ندونستن جمهور نمی ها اما بعد از لیسا و قبل از اسمش جایز دونستن توسط معنیش اینه که یعنی بین لیسا و بین اسمش بین دامه و بین بین اینو جایز دونستند ولی قبل از خود دامه و قبل از خود لیسا رو جایز تبصکا به قول شاعر میگه چنگ زده اند نحوی ها به قول شاعر در این مورد چون نحوی ها دلیلشون کلام فصیح عرب دیگه طیب للعیش مادامت منغصتن لذاته دکار الموت والحرمی میگه خوشی برای زندگانی وجود ندارد مادامی که لذتهای آن ناگوار باشند با یادآوری مرگ و پیری خب اینجا مادامت لذاته منغصتن در از ترتیب اینا؟ یعنی مادامت اسمش لذاتهوه منغسطن خبرشه ولی میبینیم که شاعر خبرو ما بین مادامو ما, ما, ما بین اسمش آورده وسطش پس این جایزه پس این چیه؟ جایزه؟ و قول الاخر سلی انجهلت الناس عنا و انهمو فلیس سوائن عالم و جهولو بپرس اگر نمیدانی مردم را در مورد ما و در مورد آنها پس نیست برابر عالم و جاهل اینجا هم فلیس سوائن عالم و جهولو می بینیم که اول خبر لیس رو آورده بعد اسمش رو در واقع ترتیب چنین بود؟ فلیس عالم و جهولو سوائن اینجا اول سوائن رو که خبر آورده بعد این چی رو؟ اسم رو که عالمه. پس, پس خبر لیسه رو بین لیسه و بین خبرش آورده که سه و اما تقدیم الخبر على ما النافیت و فممنوع باتفاق. اتفاق اما مقدم کردن خبر مقدم کردن چی؟ خبر بر مای نافیه و مصدریه به اتفاق چیه؟ ممنوع 67 إذا أخبر عن الأفعال الناقصة بفعل وجب أن يكون مضارعا. يقول في زماني كي خبر داد شد أز أفعال الناقصة فعل يعني زماني كي خبر أفعال الناقصة فعل بود ما بود يقول واجب است فعل باش واجب است که اون فعل اون فعلی که تو خبر افعال ناقصش قرار میدی باید مزاره باشه باید چی باشه؟ ماضی رو نمیشه خبر قرار داد نحو کان استادو یلقی دروس على تلامیذتی استاد القام میکرد درسها رو بر شاگردانش خب اینجا کان استادو، استادو اسم کانه هست یلقی با هوه مستتر که به استاد برمیگرده خبر هست میبینیم که اینجا خبر ما چه فعلیه؟ مزاره است ماضیش القاه هست القاه یلقی القاه باره پس ببین در شماره 67 میگه زمانی که خبر افعال ناقصه فیلی بود واجب است که اون فیل چه باشه؟ مزاره باشه ولی یک توضیح داره میگه لیکنه قدیجی او ماضیان بعد ستت منها میگه لیکن گاهی مازی میاد ولی فقط بعد از 6 تا از این افعال بعد از 6 تا از این افعال ناقصه خبرشون میتونه ماضی هم باشه اون 6 تا چی هستند کانه، امسا اسبحه اضحى ذل و بته خبر اینا میتونه فعله ماضی باشه ولی بقیه نمیتونه مال بقیه مزاره میتونه ولی ماضی ولی باز هم با شرط به شرطی این به قد به که اون فعل ماضی همراه با قد باشه همراه با چی باشه؟ یعنی روش قد اومده باشه مانند کان الولدو قد نجح الولد که اینجا الولدو اسم کانه نجح خبرش میبینیم که نجح فعل ماضیه ولی گفته بود که برای ششتا جایز است که ماضی باشه ولی به شرطی که روش قد اومده باشه و میبینیم که قد هم اومده قادها هم بروش هما ده خب ويومس العظم قد رمى و مع کانه ی جوز ترکو قد. چطور؟ اینجا گفته بود کانه حس فکرتم باره باکانه میشه قدو حس فکرت. فردی که می‌سرد کانه ولد قدر نجیحه کانه ولد نجیحه. کان الولد ناجها یعنی بدون بدون قدش میشه آورد مال کانه رو یمس العظم قد میگه بیگاه میکند استخوان مسا میکنه رستخان در حالی که پوسیده است خب اینجا میبینیم که خبر ما ماضی هست خبر یمسی که ماضی شمون امسا بود و با باقت با بعدا و معاکانه یجوزو ترک و قد میگه همراه باکانه ترک هم چیه جائزه 68 تمتاز و کانه عن سایر ها به اربعتی امور میگه ممتاز هست جدا هست جدا هست کانه از سایر اخواتش به چند ویژگی به چهار خوب اون چارت ویجه چی هستن توزادو فی الحشو بین الشیئان المتلازمین لتدل على الزمان الماضي میگه اضافه کرده میشه کانه بین دو چیز متلازم یعنی دو ای که لازم و ملزوم همند اضافه کرده میشه لتدل على الزمان الماضي تا دلالت بر زمان چی بکنه؟ ماضی و اکثر ما یکونو ذالک بین ما و فعل تعجب قیاسا و اکثر حالتی که این مسئله میاد، یعنی کانه بین دو چیز متلازم اضافه میشه بین ما و فعل تعجب قیاسا چون ما و فعل تعجب لازم ملزوم همه خب سیغه تعجب یک ما احسنه آه؟ ما و احسن ها میشه با هم بشن میگه گاه این کانه میاد بین اینا قرار میگیره تا دلالت بر چی بکنه تا دلالت بر گذشته بکنه مانده ماکان احسن ریابا باقی چقدر زیبا بود باغ چقدر زیبا بود بله این یکی از ویژگی هاشه که با بقیه فرق داره ویژگی بعدش میگه تحذف جوازن مع اسمها یکی از ممیزه های دیش اینه که همراه با اسمش حذف میشه جوازا بعد از ان ولو شرطیتی بعد از ان ولو شرطی لیت تخفیف جهت تخفیف نحو مانند ستوجازه ان کان جزاؤک خیرن و این کان جزاؤک شرن میگه تو جزا داده میشه اگر جزا تو خیر باشه و اگر جزا تو چی باشه شر باشه خب ان خیرا خب کانه این کانه جزا او اما کانه با اسمش که جزا باشه اون چکار کرده حذفش کرده اون قرینه وجود داره ببین تو جزا تو جزا داده میشه ان کانه جزا او که این کانه با جزا او که رو چکار کرده جوازن حذف شده پس این دیگر از دیگر کانه با بقیه اخواتش هست. ولا يأمن الدهر ولا يأمن الدهر ذباغيا ولو ملكا میگه از دهر در امان نمی باشد. بقیه کننده اگر چكي شاه باشه خب جمله چونینه لا یامن الدهره ولو كان البغی... ببین لا یامن الدهر ذو بغیا ولو کان ذو البغي ملکاً ولو کان با ذو در بعد از واو شده چون قرینه وجود داره ببین لا یامن الدهر ذو بغی لا یامن الدهر از دهر در امان نمیشه زوبغی ولو کانه زلبغی ملکن اگر اون بغی کننده چی باشه؟ پاچه باشه کان با زلبغ چی شده؟ حس شده ویژگی بعدیش چیه؟ توزاد و البا فی خبری ها اذا ها نفیون میگه ویژگی بعدیش که فرق میکنه از بقیه اخواتش اینه که اضافه کرده میشه با در خبرش زمانی که قبل از کانه نفی آمده باشه مانند ما کان الله بظلامن للعبید اینجا میبینیم که ببین؟ ما کان الله ظلامن ما کان الله ظلامن ولی میبینیم که روی خبرشتی اومده با اومده پس با اضافه میشه در خبر کانه زمانی که قبل از نفی اومده باشه که این البته لفظاً مجروره و محلن منصوبه چون خبر کانه جز منصوباتی اللهم اسمش شه و مرفو ذلام خبرش و منصوب ولی محلن منصوبه چون لفظن حروف حرف جر اومده و چی شده؟ مجرور شده این بای زائده ویجگی بعدی کانه که با بقیه فرق داره اینه نون و مضارئه ها تحذف و جوازن اذا لم يكن بعدها همزت وصل، ولا ضمیر. ازا لم یکن بعدها همزتو وصلن ولا و نسبن ولا موقوفن علیها نحو لم اکو بغیین یکی دیگر از ممیزه های این کانه اینه که نون در مزارع مجزومش کانه مزارعش یکونوه دیگه نون داره میگه نون مزاره مجزومش جوازن حس میشه نون در مزاره مجزومش اصلی اینه که نشده. نشه مثل لم دیگه جازم هز مجزون میکنه لم یکن لم یکن میگه این نون حسف میشه اذا لم یکن بعدها حمزه توسف به شرطی که بعدش حمزه توسف آمده نباشه نیامده باشه و زمیر منصوبی هم بعدش نیامده باشه ولا لا موقوفا علیها و روی این هم وقف نشده باشه با این سه شرط میشه نونش رو جوازا حسب لم اکو بغییا در قرآن دیگه اومده لم اکو میبینیم که اك... این در اصل اینجوریه لم اکن بغییا ولی نون حسب شده چرا؟ چون بعدش نه همزه وصل هست نه زمیر نصف هست ولی روش توقف شده ولی روش چی؟ بله یعنی ادامه داره منظور اینه اگر روش وقف کنی فرق میکنه فوائد. تحذف كانان مع ما بعد إن في قولهم افعل هذا إما إما له افعل هذا إما له اینجا ببین اینجا کانه با دو معمولش هست شده اینجا در اصد هست میگه F ها و اما لا افعل ها و انکنت لا تفعل و غیره این رو انجام بده اگه چیزی دیگه ای انجام نمیدی حد ما اگه کار دیگه نمی کنی کار مثلا دیوار رو آب بزن مثلا اینجوری ها میگه افعال هذا اما لا اما اما افعال هذا اما لا پس افعال هذا ان کنت لا تفعل و غیره اگه کار دیگه ای نمی ولی اینا انجام بده که اینجا میبینیم ان کنت لا تفعل و غیره کانه اسم و خبر و همه چیزش چه شده؟ حس شده و این مایی ای که هم بعد از این ما اومده این ما در عوض همون کانه هست و الله هم لای نافیه خبر رو نافی میکنه بالا. دو و تحذف وحده ها وجوباً بعد ان المصدریتی دو, دو در فوائد داره ذکر میکنه در تبصره میگه خودش به تنهایی وجوباً حس میشه بعد از ان المصدریتی بعد اس تي معوضا انهب بماء الزائده در اوازش هم ما زائده مياد در اوازش هم تش است ويبقى اسمها وخبرها اما اسم خبرش باقي ميمنون ما عنده ان ما ببین، ان ما انت رضو. اینجا کانا چی شده؟ در ان اینکه بودی چی بحر. وقد أللن ذلك بقولهم ان اصله لأن كنت راضيا. كيميجان لأن كنت راضيا رضو لأن كنت راضيا فحذفت لام التعليل لام التعليل لأن كنت لأن كنت راضيا رضو خب فحذفت لام التعليل من أن فحذفت لام التعليل من أن على قياس حذفها ثم حذفت كان للاختصار و زیدت ما منها میگه حس شده است لام تعلیل قیاسا بعد از اون کانه به خاطر مختصر شدن هست شده و در عوضش هم یک مای شده اضافه شده ان ما ان بله. پس این مایی که اومده ان ما این ما چه هست بله در عوض کان است. فن از زمیر الذي هو اسم کانه لعدم استقلال هی متصلن خب موقعی که کنته در اصل بوده و کانه هست شده مسلمه که زمیر متصل موقعی که جدا بشه باید ضمیری که موافق باشه از از نوع منفصل هست سر جاش بیاریم نه انت دیگه میشه کتا موقع کانه حذف بشه به جای تا یکتا ذمیر متصل دیگه تا همچی میشه میره دیگه نه سر جاش میشه زمیر منفصل انته پس زمیر که اسم کانه بوده جدا شده و بجاش انت شده و نون ان ان مصدریه با میم با هم دیگه ادغام شدن چون مخرج چون با هم دیگه نزدیکت فصارت ان ما اینجوری شده ان ما انت در اصل بوده ان كنت که اینجوری شده اما كنت اما خب بعد از ان که بیاد با هم ادغام میشه میشه اما تا هم که جدا شد از کنته تظمیر متصله نمیشه به تنهایی بکار امور لذا انت رو میگیم که به همون معناست که به همون بله شسولو تختصو لیسا به ثلاثت امور لیسا مختص به چیزه یعنی اینا مختص لیسا هستند این سه امر زیاده تلبا في خبرها جوازند جوازا میشه روی خبرش بار آورد بارو روی خبرش میشه جوازا آورد مانند الله بظالم للعبید خداوند برای بندگان ظلم کننده نیست خب اینجا الله اسم لیس هست ظلم خبرش هست ولی روی خبرش باچس میده لفظا مجروره اما محلان منسوبه خبری خبرها یکی دیگر از ویژگی های یکی دیگر از مختصاتش حذف کردن خبرش ماننده قال الجاهل في قلبه ليس اله قال الجاهل في قلبه ليس اله موجودا که خبرش چی شده خبر که موجودن باشه حذف شده باطلان و املیها اذا تقضى خبرها بله باطل شدن خبره. باطل شدن عمل لیسا زمانی که خبرش به وسیله الا نقض بشه اگر خبر لیسا به وسیله الا نقض شد دیگه عمل لیسا از بین میره بله اینجوری میشه ببین مانند لیث طیب الا المسک خوشبوئی نیست جز مسک خب اینجا خبر با الا نقض شده لذا میبینیم که المسکو عمل انجام نداده و میبینیم که مرفوعه میبینیم که چیه؟ بله متوجه شدی؟ ولی در, پا... در پاورقی یک اختلافی رو بین نحوی ها گفته گفته عملش در نزد تمیمی ها فقط باطل میشه اما در نزد حجازی ها نه باطل نمیشه و اونا منصوبش میکنن یعنی اونا اینجوری میگن لیس الطیبو الا مسکه الا هجازی ها ولی تمیمی ها میگن نه عملش دیگه باطل شده عملش چی شده؟ دیگه اسم نداره دیگه روی خبر هم خبر و منصوب نمیکنه.